لم تسر خدلانا جبين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين در کفی موسا همین شمشیر بود کاری او بالاتر از تدبیر بود سینه دریای احمر چاک کرد قلزمی را خشک مثلی خاک کرد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران مهاجر و مجاهد، به برنامه امروزی ما خوش آمدید امروز جمعه تاریخ حبدی ربیعستانی حرکت اسلامی ازبکستان رادیوی صدای جنداله نشرات فارسی خود را ادامه می دهد بله هم کاری عزیز شما را زیاد منتظر نمی گذاریم میراییم به سوی داشته های برنامه امروزی در برنامه امروزی سلسله اندرس ها از شورا میشنویم که روی کدام موضوعات بحث صورت گرفته است مصاحبه رادیویی صدای جندالله با برادران مجاهد اطلاعی امر بالمعروف و عن المنکر حرکت اسلامی ازبکستان و همینطور تحولات یک هفته عینانا و غنت الحضور لحن الحظ مضربه ان بعيشك منقورا وجلانا ان درسها است بدانش هر چی کنی به خود کنی برادر آن است که غمی برادر را داشته باشد فرزند بعد از نژاد بد است بزرگی به عقل است نه به سالوسین آدمی هنر تحمل دیدن هنرمند را ندارد تا رنج نبری گنج بر نداری کسی که قدرت ندارد نباید جنگ طلب باشد هنگامی که دشمن از همه حیله فروماند سلسله دوستی بجنباند پس از آن به بهانه دوستی کارهای کند که هیچ دشمن نتواند دو کس مردند دو حسرت بردن یکی آن داشت و نخورد و دیگری دانست و نکرد خب همکار عزیز اندرزها را به خدمت شنواندگان تقدیم نمودیم، خدا کند که این اندرزها درس خوبی برای شنوندگان عزیز قرار گرفته باشد شورای حرکت اسلامی ازبکستان در هفته گذشته به فضل الله تعالی در هفته گذشته یک شورای عالی بین مسئولین و سران حرکت اسلامی ازبکستان دایر گردید در این شورای مبارک اشتراکنندگان در مورد موضوع مهمی که عبارت از جهاد و متعلقات آنست خانرانی نمودند گاهی می دیدن و گاهی می گریستند علت این همایی این بود که باید همه افراد جماعت از می خود را محکم و نفس هایشان را از محرمات پاک نگه دارند از لحاظ امنیتی نمی توانیم همه گزارشات شورا را به خدمت شما عرض نماییم ولی کن بعضی نکات مهمی که در این شورا با آن اشاره شد به خدمت شما عرض می نماییم یک همه مجاهدین با خاطر حفظ برکات بر نمازهای پنج گانه پایدار باشند اگرچه این نقطه اصاس دین است ولیکن بخاطر این با اشاره شد که گویا یا گوینده گبته باشد که وذکر فا این ذکر تنفع بعد این لحاظ شما یک حدیث فرامی که از نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرسیده شد که کدام عمل بهتر است وی صلی الله علیه وسلم فرمودند الصلاة في وقتها دو در این جلسه برادر امام مفتی ابو زر باشددد و, و آواز بلند در مورد امور و مهم چنین اشاره فرمود باید ما در مقابل هر عمالیات کفار جواب دهیم. نه فقط قصاص افراد این حرکت بلکه قصاص تمام شهاده گرفته شود از الله تعالی خواهیم که عزم و ایراده ما را قوی گردانی ده و برای ما قوات بخشد که انتقام مسلمانان زعیف را بگیریم تا که همه کفار روی زمین در رعب با و ترس باشند سه در این جلسه و نقطه دیگر اشاره شد وان این است که همه مجاهدن باید زهد و تقویر پیشه خود گردانی ده و حیات فانی دنیا را ترک نمایند. در همین حال امیر حفیظه الله فرمود هنگامی که انسان سوی سنگر می فقط صلاح و بستر را با خود می برد نه تمام دنیا را. چار، مسئولین و اهل شورا اجازه ندارند که هیچ نو را از داخل و یا خارج حرکت به طور مخفی بگیرند اگرچه این نقطه در صحنه عمل پیاده بود ولیکن در جلسه به این نقطه بار دیگر اشاره کردید. تا مسئولین از فتنه اموال در امان باشند به طولی مثال عبدالله عزم رحمه الله در کتاب خود مجاهدین را از مال و شهرت می ترساند اکنون بشمایه قصه مختصر را از زمان خلافت امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی الله عنه نقل می کنیم عمر رضی الله عنه در دوران خلافت خود نگاه می کرد کتاب در بین مسئولین و مردم امتیاز نباشد. و ای رضی الله عنه در میان مسلمین گشت و گذار میکرد و از ایشان میپرسید که مسئولین شما چگونه است وقتی که مسلمین از مسئولین شکایت میکردند عمر رضی الله عنه به مسئولین سزای سخت میداد و همچنان مسئولین را نیز نظارت میکرد که ایشان چگونه زندگی خود را بسطر میبرند در یکی از روزها عمر رضی الله عنه خانه یکی از مسئولین را زیارت نمود ناگهان بر دیوار مسئولیتی را دید و پرسید که این چی است مسئول گفت که فامیلم این کار را انجام داده تا که خانه را و زنان ها خیست و تیکه از بر دیوار گرفت و مسئول گفت ای مسئول وقتی که مردم بگویند که در خانه مسئول همین چیز است در آن هنگام با ما دلیلی است که جواب بگویم و حتی زنان میگفتند که ما خوش نداریم تا که شوهران ما مسئول باشند زیرا این با ما یک ضرر است پنج به پاملین حرکت اجازه نیست افلا میره که در آن مردان هستند تماشا نمایند شش نقطه اخیر این است که به هیچ یک فرد حرکت اجازه نیست که گروه های دیگر را حقارد و غیبت کند. همچنان در این جلسه تمام مسئولین گفتند که ما از هیچ نوع اختلافات سخن نمی بریم زیرا ما می خواهیم که با تمام مجاهدین متحد شویم. از الله تعالی می خواهیم که زبان و قلوب مرا صفا کرده و صفوف مرا مواحید گرداند. شنوندگان عزیز این بود معلومات مختصر شورای که در هفته گذشته صورت گرفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اسما ملت مصاحبه رادیوی صدای جند الله با برادران مجاهد البته این موضوع را همکار ما ادامه می‌دهد شنواندگان عزیز ما امروز در یکی از مراکز مجاهدین قرار داریم در اینجا جوانانی به نظر می‌رسند که بسیار پرشهامت و با جوش ایمانی در صفوف مجاهدین آمدند شما را زیاد منتظر نمی مانمی رویم برادران عزیز از اینها می پرسیم که در این باره چی گپتانی ها دارند برادران عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو در قدم نخوص خود را به شنواندگان رادویو صدای جندالله معرفی عزب الله من الشیطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام خود را به تمام برادران اسلام و مجاهدین سرتاسر سر جهان تقدیم می دارم. می رئیس کشور افغانستان و ولایت کابل. برادر عزیز، چی باعث شد که شما در سطحی مجاهدین پیوستید؟ من چند وقت مدود مکتب می خوندم و بعد از به مدرسه ای رفتم. در آن مدرسه هم که دیدم و تاق قد کردم دیدم کلش در زیر سلطه کفر است و در زندان بکرام زندان گوانتانما اگر ببینیم غیرت هیچ مسلمان قبول نمی‌کنه که این را قبول کنند با کسی که ما ایمان داریم به او به میشه ما خود را امت الله میگیم مگر ما در مقابلش ای چیز نکدیم این غیرت است این شجاعت است نی برادر من یک فرد عاجز و مظلومی هستم انوزم ایمان ما کامل نشده برادران بخیزین در صفوف مجاهدین خود را برسانین بخیزین ای وظیفه ایمانی و وجودی خود را ادان نمایین که صبا روز در قیامت از گردن شما الله سبحانه و تعالی نگیرد برای شما نگوید که شما در امان وقت که بودین جهاد بود یا نبود برادران اسلام آن ما در زیر سلطه کفر ایچ وقت نمی خواهیم زندگی کنیم پدران ما با شامد جنگید و ما با شامد خواهیم جنگید کفر که اول جنگ عقیدتی میکنه با ما که جنگ عقیدتیش در کابل به حد نهایی خود رسیده لباس ما لباس کفر شده حتی در مساجد، مکتب ها، مدارس ببینی، گپای کفر ها میزده میشه و قرآن مجید که کلام الله است، به او به احترامی میشه و غیرت سابق؟ کجا سو غیرت پدرانه؟ این کفار آن غیرت پدرانه میخواه که به مثل پدرای خود بخیزین در صفوف مجایدین یکجا شده و کفار را ورشکست بسازین چی شد آن غیرت چی شد آن حمت؟ او مادر چ شد که در راه اسلام پسران خود را فداکت از آنان پسر خود را فدا ای برادر این مادر امروز میگه پسر کشته میشه پسر تو در جنت میره در جنت؟ دو خوش هستی که او در زقبره عزرت محمد صلی اللہ علیه و سلم با مسلمانان چقدر محبت داشت این مسلمانی ما است، این غیرت ما است، این حمت ما است. با دو های خود میبینیم چی فعاشی و چی ظلم و ستم بالای مسلمان میشه آرام شیشتیم در مساجد ملاها بیبینی تمام روز برای مردم میگوید نماز بخوان نماز بخوان من یک روز در مسجد برای ملا گفتم گفتن تو ترجمه قرآن کریم را کردی در قرآن کریم در کدام جایش نوشته از جهاد دوباره جهاد سکر شده برای من چی میگه بچه میگفن ازن که ما گرفتار میشون مرا امریکا از ظلم امریکا نترس این دنیا دو روز است اگر زیاد ظلم سر زیاد شود خود مردی ولی او دنیا عبدالعبد است امروز بان کفار رقم میخنده بر سر ما بخنده در او دنیا الله. ای یقین داریم که ما بالای آنها خاتخندیدیم چشتو غیرت چشتو اعمت سابق چشت روزها را کشید برای ما امریکا را آورد ای مجاید ما به تو ای خطاب را میکنم که تو غیرت سابق چشت چرا حالا در خانه ها شیشتین پسرانتان را نمیمانین در صفوف مجاهدین بیاید چرا دلار جمع چشم شما را گرفته هیرو دم چشم شما را گرفته هیچ وقت ناموس تان را به دلار مفروشید؟ در زندان بگرام اگر شما فیلم های شما مشاهده کنین ببینین که با زندانیا چی عرکت های ناشایسته میشه ای مسلمان تو رقم سریال ها خود را نساز رقم فلم های ایندی خود را نساز تو با مسلمانی خود فخر کو. برادران عزیز بازم برای شما میگوییم که بیاین به صفوف مجایدین همین چند کلام بود که برای شما برادر مجاید شما گفت و سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو اکنون می این به طرف برادر دیگر، برادر محترم، خود را به شنواندگان رادیوی صدای جنداله معرفی نمایید. بسم الله الرحمن الرحیم، اسم مزمل حاشمی از افغانستان، از ولایت کابل. مجاهد عزیز، چی باعث شد که شما در سپو مجاهدین پیوستید و در این راه پر از مشقت و تکلیف خود را فدا نمودید؟ سرف حکم قران چیزی که بوچه ظلم های کی این ظالمان صلیبی و یهودیا در ملکات ما در ملکات های دیگر کی کردن و چیزان دانا ها چیز چون این وجدان ما هیچ وقت قبول نمیکنه که یک خواهر on ها همه پالیس های کی میخوان میخوان هم قانون های کی در کفر و صلیب می چلند میخوان در ملکای امم راکت های اسلامی نس هم جزرب وجود بیورند و پایم بارش ما همین است که شما اگر این فکر میکنین که شما نمیمورین یا بی فکر فیاستین که کامیاب شوی agar زندانی شوی agar شوی اگر کوشتا شوی کامیاب شوی هم راش کامیاب هیچ راش شکست نداره و شما مادران و پدران عزیز اگر شما هی فکر nadara که اولاد ما براد شهید خاط شود یا از ما ما بچی خاط کریم هیچ چیز مشکل kayb paymand az sufuf-e islam as به همینطور اگر خبر باشید در جریان هفته گذشته، ما با مسئولین امروی معروف ملاقات نمودیم. ایشان ضمن سلام و کلامی خود از ما خواستند تا قوانین و زوابیت امروی معروف و نهی عنی حرکت اسلامی اوزبیکستان را از طریق رادیوی صدای جندله به برادران خود برسانیم. بسیار خوب، پس میشنویم. قوانین و زوابیت امروی معروف و نهی عنی در استعمال وسایل فرهنگی، یعنی می Allah jalla jalaluhu dar Qur'an Karim dar bare-e a'saf-e mominan-e salih mehrbani mikonad. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd, bil Ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'atuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ula'ika sayarhamuhum Allah. Inna Allah 'azizun hakim. مردان و زنان با ایمان دوستان یک دیگرند. که به کارهای پیسندیده وا می دارند و از کارهای ناپیسند باز می‌دارند و نماز را برپا می‌کنند کنند و زکات را می دهند. و از الله جل جلاله و پیامبرش صل الله علیه وسلم اطاعت می نمایند. آنان را الله تعالی بزودی تحت رحمت خود قرار خواهد داد. و یقیناً، الله جل جلاله غالب و بحکمت است. جماعت و یا گروهی که خاطر عالی ساختن کلمه الله تعالی و از بین بردن کفر، شرگ و فساد روی زمین، از دیر وقت به دینس سو قربانی های را متحمل شده، تا کنون این قربانیشان نیز ادامه دارد، در قدم اول باید تدبیق شریعت اسلامی و عمل کردن به اصول و قواید اسلامی را به خود لازم بگرداند، jinan allah jalla jalaluhu me fermoyad inna allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim dar hakikat allah taala halati qawmi ro taghyir nemidehat ta anke hal-i بزرگترین نیمتی الله جل جلالهو برای بر انسانها چشم و گوش می باشد در صورتی که این را انسان در رای خیر و مطابق شریعت استعمال کند سبب رزامندی پروردگار و حصول جنت می باشد بر اکس آن دیدن و شنیدن چیزهای نامشرو و استعمال کردن آنان به اشیای ناجائس البته موجب سزای الله جل جلالهو می الله تعالی در قرآن کریم مهربانه می کند ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤوله زیر گوش چشم و قلب همه مورد پرسش قرار خواهند گرفت یعنی شخص از اشیایی که شنیده دیده و یا باور نموده باشد در روز قیامت به حضور پروردگار جواب می‌دهد معلوم است که در عصر امروزی هر نوع مدیا و اسباب ویدیو و آودیو باتوری سریع ترویج یافته و در حیات ما داخل گردیده است، ولیکن این وسایل میدیایی بسیاری از مسلمانان را از ذکر الله جل جلال جلاله باز داشته و سبب زایشدنی وقت قیمت قیمتبها، کم شدن اعمال صالحه و سیاشدن قلوب مسلمانان گردیده و همچنان فسادی اخلاقی را نیز به بار آورده است. بدین لحاظ رهبریتی حرکت اسلامی ازبکستان به خاطر حفاظت اخلاقی مجاهدین در استعمال وسایل میدیایی از چیزهای رو و است Steamali on se on mukauttaja islamin shariaa. Täytyy olla kunnioitettava. Tämä on kunnioitettava. Tämä on kunnioitettava. MP3 kunnioitettava. Tämä 4 kunnioitettava. Tämä 5 kunnioitettava. Tämä on kunnioitettava. Tämä on kunnioitettava. Tämä هر نو اسبابی که قابلیت حفظ میدیا را داشته باشد مانندی سی دی دی وی دی هارد دیسک میموری فلاش و غیره هشتم هر نو کامره فیلم برداری و تصویر برداری نکات زیل ممنوع قرار داده شده است اول هر نو موسیقی دوم هر نو افلامی که در آن تصویری زن باشد سوم افلامی که نامیان اسلامی ولیکن دران میوزیک و تصویر زن باشد. مانند فلم حجاج، سلاح الدین ایوبی، هارون یحیا و غیره. سه، افلامی ورزشی، اگر چند تصفیه گردیده باشد. مانند فلم جیتلی، بروسلی و غیره. به استثناء افلامی که دران ورزش های باکس، و کشته به طریقی تدریس نشان داده شده باشد ولیکن لازم است که در این او افلام سحنه های نامش رو بلخصوص ورزشکار دیده نشود پنجم اودیو و ویدیو که دارای آوازی دف و تنبور باشند ششم افلامی کارتونی که آن میوزیک و تصویر زن باشد مانند فیلم جلال دین منگو بردی و غیره هفتم افلام کارتونی بیهوده ماننده فیلم تام اند جیری و ام مزلک داوری هشتم ترانه هایی که دارای یک نوع آهنگ باشند یعنی ترانه هایی که در آن افکت های کامپیوتر به درجه آهنگ استعمال شده باشد این نوع آهنگ در این عصر در ترانه های عربی و پشتو زیادتر دیده می شود شنیدنی آنان نیست تقریبا حکم موسیقی را دارد نهم بازی های یعنی گیم این گره پروگرام ها وقت مسلمانان را زایی و سبب مانع ذکر الله جلال جلاله همی گردد ده هم فکاهی و چیزهای خنداور اودیو و ویدیوهایی هایی و دران وقای خنداور و بهوده باشند این نوع اشیا قلوب مسلمانان را سیاه می سازد اصول و زوابیت در صورت اجازه مسئولین هر آزوی حرکت حق دارد تا به شخصی خود کامپیوتر، DVD، MP4، کامرا و غیره را خریداری نماید. دوم، در داخل mp نگهداری اناشید اضافی ممنوع باشد. سوم، برادرانی متعهدی که MP4 یا موبایل های کامردار را به مال شخصی خود خریده باشند، در صورتی که خود شخص و یا فامیلش استعمال نماید، تحت تقیق قرار میگیرند. گیرند. چهارم، در صورتی که از صاحبان کمپیوتر در عمل نمودن به قوانین فوق ذکر تعهد گرفته شده باشد، استعمال کمپیوتر اجازه است. و اگر کسی در عمل نمودن به قوانین وضع شده فوق احداده نتواند، استعمال کمپیوتر اجازه نیست. پنجم اعضای شورای عالی حرکت و مسئولین امر معروف و نهی انیلمونکر در نظارت کردن وسایل میدیاوی حقوق کامل دارند، انگامی که وسایل اس ویل میدیائی بخاطر نظارت از سوی ایشان طلب کرده شود در این باره همکاری برادران مجاهد شرط است ششم قمانداران گروهای جهادی در گروه خیش صلاحیت امر بالمعروف و نهی عن المنکر را دارند در صورتی که وسایل میدیاوی به طریقه غیر شرعی در گروه استعمال گردد قماندان گروه در پی امر بالمعروف نگردیده خودش فعالیت کرده میتواند به خصوص گروهی که به سریا فرستاده شده باشد امیر سریع افراد را نظارت کند تا که همه افراد گروه به شرایط فوق ذکر عمل نمایند هفتم اشهایی که مانند ایم پی 4 دارای کامرا باشند یعنی قابلیت تصویرگیری را داشته باشد در صورتی که کامرای همانشه از کار برآورده شود استعمالیان در خانه اجازه است در صورتی پیدا شدن عشایی ممنوع در داخل وسایل میدیابی دیدن و شینیدن همانچه معنی گردیده و حذب گردد. 9. مسئولین امرو معروف و نهی عنی المنکر به برادرانی که به صورت قصدی قوانین و زوابیت و شده ای فوق را زیر پا سزایی را که خودشان لایق می‌بینند بالای ایشان تطبیق می کنند و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته باز هم خوش آمدید اکنون شما را از تحولات یک هفته با خبر می افغانستان سیزده رای مطابق مطابقه 5 مارچ در نزدیک دروازه در هوایی بگرام یک برادر استشهادی به نام احمد با استفاده از کرولا عملیت استشهادی کرد. در نتیجه چهار اسکاری ناتو کشته شده و شش تن جراحت برداشتند و چند تن کشان نیست تخریب کردیدند. دایره روسانی مطابق دوی مارچ. یک برادر استشهادی بنامی عبدالکار با واسه واسکت در ولایت قندهار عملیات استشهادی کرد که در نتیجه اسکاری خارجی کشته و پنج تن دیگر مجروح گردیدند. سه ربیستانی روسانی مطابق پنج مارچ. در ولایت جوزجان مجاهدین امارات اسلامی با کمک الله تعالا توسط سلاح در یکی از دیاره بدون سرنشین امریکایی را سقوط دادند به تاریخ مذکر در ولایت ننگرهار در اثر این فیجار مای شده یک معموری پلیس کشته و ده تن دیگر مجروح گردیدند به تاریخ مذکر فایز الله واحدی والی ولایت کنر در هنگام روانه به سوی هدف ماین کنار جاده قرار گرفت ولیکن متاسفانه هیچ آسیبی به وی نرسید پانزده ربیع ثانی مطابق 7 در در والسوالی اسپمبولدا کی ولایت قندهار مجایدین امارت اسلامی ماین را که به موتر سایکل جاسازی شده بود بواسطه ریموت کنترول انفجار دادند که در نتیجه دوازده پلیس کشته و 8 تن دیگر مجروح گردیدند و تاریخ مذکور در نتیجه برب کوچ های متواتر در ولایت بدخشان احالی یک قریا کاملا زیر برب کوچ ماندند البته تعداد قربانیان این حادثه تقریبا دوصد نفر بوده و تا کنون 50 از زیر بر بیرون کرده شده و متوقع تحت برب می باشند پانزده ربی ساره مطابقه هفته مارچ شش اسکر بریتانوی سوار بر تانگی زرهی در شهر لشکرگاه در حال گزم بودند هدف ماینی ما که نارجاده قرار گرفتند که در نتیجه تانگ مذکر با تمامی سرنشینانش به حلاکت رسید 16 ربیستانی مطابق 8 مارچ در نتیجه انفجار یک ماین در شهر جلال آباد نو اسکری پلیس ملی جراحت برداشتند پاکستان 10 ربیستانی مطابق 2 مارچ در شهر پشار یکی از رؤسای استخبارات پاکستان از سوی یک مرد مسلح به قتل رسانده شد 11 ربیستانی مطابق 3 مارچ در ایالت خیبر پختونخوا بالای آپتاب شیرپو که امیر حزب پیپل پارتی است عملیات استشهادی صورت گرفت در نتیجه یک اپزاری پلیس با شش سربازانش به هلاکت رسیده‌ و خود شیرپا و جان به سلامت بود. الجزایر. یوزای ربستانی مطابق 3 مارس در شهر الجزایر یک عملیات استشهادی صورت گرفت که در نتیجه 23 تن از ساکیری پلیس کشته شدند. پولند. 12 ربیاستانی مطابق 4 مارس در اثر تصادمی دوره‌ی مسافربری در آن کشور 16 تن کشته و بیش از 50 دیگر زخم برداشتند. استانبول. نوی ربیستان مطابقی یک مارش در نتیجه یک انفجار در شهر استانبول ترکیه ده پلیس آن کشور زخمی گردیدند این مایند در یک موتر سایکل جاسازی گردیده در نزدیکی موتر پلیس انفجار نمود. تا کنین مسئولیت این حمله را کسی به قدر نگرفته است اسرائیل نوی ربیستان مطابقی یک مارش عساکر یهودی در که از استیشن تلویزیون بنامی وطن که مربوط مسلمانان بود. حجم برده و از این استیشان تمام اوراق، کمپیوتر و دیگر برنامه های تلویزیون را با خود بردند. از همان روز تا کنون فعالیت این تلویزیون متوقف گردید. یمن، یازده ربیستانی مطابق سی مارش، در ولایت بیزاد و برادر استشادی در داخل کمپ افواج یمنی عملیات استشادی کردند. نظر به گفته حکومتی آن کشور در این عملیات 4 تنی آنان به قتل مطابق 5 سی در ابیان شهر سنشبر مجاهدین بالا یک از مراکز حربی عسکری یمنی هجوم بردند هجوم در نتیجه این هجوم 55 اسکر یمنی به دست مجاهد اسیر و تعداد از موتورهای حربی و بسیار از سلاحهای عسکری به دست مجاهدین غنیمت گردید در همین حال حکومت از کشته شدن 78 عسکر خودشان و از شهادت 28 مجاهد خبر میدهند ولی کن هیچ نو دلیل به شهادت مجاهدین ندارند <تصفح> نين الله مقصدي عزیز این بود داشته های برنامه امروزی تا جمعه دیگر خداوند منان یار و یاورتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته أدرك اليهود عرض نادس، كرامة مسجدي، و تعرض لنبينا جمع النصارى الحاقدين. وأضرب مسمعي زر صاصر الشاش أبي زمجر، وأضرب مسمعي زر صاصر الشاش أبي زمجر، وأضرب مسمعي زر صاصر الشاش أبي زمجر. وأطلب مسمعي برصاصر الشاش الأبي فتكان لا تفرح فقط جئنا بجيش أحمدي <تصفيق> يكون للموت كما تهفون شرب الخمرة فتكان لا تفرح فقط جئنا بجيش أحمدي <تصفيق> يكون للموت كما تهفون شرب الخمرة <تصفيق> آهل لنيل لي شهادة في ساح أقصان الأبي آهل لنيل لي في ساح اقصان الأبي رشاش ابي زمجر وأطلب مسمعي فرنس رشاش أبي زمجر, زمجر واطلب مسمعي فرنس رشاش أبي زمجر رثا